در جلسه قبلی در بخش ششم ما تا اینجا رسیدیم که کسری در مورد میشی که نماینده حضرت اباس بودند صحبت کرد و بعد گفتیم که مطالبی رو شروع کرد در مورد تاریخ 18 ساله آزربایجان از همین دمآوند حالا ادامه میدیم که ادامه زندگانی کسوی چه بوده؟ در سپاس دارم از شما بینندگان بزرگوار و از مسئولین و مرجیان عزیز تلویزیون رنگین کما کسوی رو در مهرماه آن سال که در هنوز در معمولیت خودشه نماونده برای امتحان حقوق و قضاوت به تهران خواستند به ماه 1301 شاه به قدرت سیدم میخواهد عدقیه رو مدرن بکنه اصلاح بکنه اصلاحات رو شروع کرده یکی از وسائل مدرن سازی ادبیه این است که باید خاصی آگاه به حقوق باشد. کسروی بارها گفته و بازم بنده از زبان کسروی خواهم گفتش که گرفتار بود از این مسائلی که نیستفادن گذشتی کسروی گذشتی دارد کسروی گذشتی در این تاریخ که ما داریم صحبت می کنیم محاکم محاکم محاکم عرفی وجود نداره محاکم اولفی محکمه دولتی رو میگن محاکم شریع اونه که آهایون ملایان مشتهدان بر خود درست کردن و حقوق اسلامی رو در اونجا اکرام میکنن متاسفانه یکی از علل انقلاب مشروطیت ما قبل از مشروطیت در خاص ادالت خانه بود مردم جمع شدن رفتن در چاب ادالت خانه خواستم چرا؟ بر این هم محاکم شرعی و هم محاکم عرفی هر دو تاشون ظالم بودند محاکم عرفی مختصه محاکم عرفی مختص پادشاه بود صدرزم هاش بود حکام محلی بود والیان بود جاهزادگان بود هر که دلشون میخواست مردم رو به نام آیا میزدند میکوشتند اما این آخر اون اصلادش موجوده اصلاد نوری قاچار موجوده ما حاکم اون شرعی هم که خب طبیعیست ما چهل سال چهل دو سال اون تو هستی میبینیم تازه اینا مدفش شدند. هیچم مدرنیت ندارن همین هستن که در 1400 سال شروع کردن و حالا هم همون ادامه میدن دست میبرن اینا شلاغ میزنن هر روز در چهار های مملکت ما بدبخت این مردم رو به خاطر یک جرع شراب شلاغ میزنند با همه مواهب زندگی انسانی مخالفت میکنن اینا خب این اونم عرفیه انقلاب مشروطیت شد برای ارز کردم ادالت خانه و که مردم به تنگ آمده بودن خوش در اون مشروطیت گفتن. مشروطیت اصولهایی پیاده کردند برای اصلاح عدلیه ولی ملایان درست درسته که عدلیه عرفی از دست شا... پادشاهان و مردم عادی بیرون آمد پنجاه درصده گشت و اینجوری از بین رفت افتاد به دست دارگستری دارگستری ممکن ولی محاکمه شهری در دست ملایان بود نزاشتن یکی از کسهایی که مخالفت کرد با تخییل محاکمات در عدلیه همین سید عبدالله به که یکی از دو روحانی رهبر انقلاب مشروطیت بود نزاشتن و وقتی نزاشتن نه تنها محاکم عرفیام برای این آیون تحتیل شد تمام محاکم اومدن افتادن دست, دست مولایان سند موجوده همش نوشته شده خب حالا سال 1301 مهت ماه کسوی در معمولیت مسئولیت دماغنده میخوان امتحان بگیرن امتحان بگیرن شروع بستن محاکم شرعی و استقلال محاکم عرفی است به هر حال کسری پس از این که میگه شنیدم دستور گرفتم همون فرداش با پای پیاده این مرد از دماوان میره تا تهران خودش میگه که یازده فرسنگ را در 24 ساعت حرکت کردم فردار شدیدم به تهران میرسه به تهران پس از این همه راه پیمایی 24 ساعت میداری راه رفتم میگه رفتم لباس هم رو عوض کردم برگشتم رفتم عدیگه امتحان بدار اجانبه تمام امتحان ها رو یکی یکی اونجا میده با اون خستگی با اون بستلاح گرفتاری کسرها رسیده دیگه طبق محمود در مورد زبان عربی امتحان عربی مطلبی گفته رفتار کسری خارج از چهارچ نرم ما ایرانیاست ما ایرانی آدم اغلب متملقیم ما ایرانی ها نمیتونیم مشکل یکی رو اشکال یکی رو در چش در بگیم پشتاری جرد می که عذر بدتر از گناه ولی کسی دیناتارو ندارش هرکی که می خواست رو درخون می گفت می نویسه که یکی از آزمایش ها زبان عربی بود روزی که رفتم شمس العلماء غریب ممتقه به صلاح زبان عربی است که آزماینده می بود نخفت فرسش کرد و پاسخ هایی دادیم همون امتحان شفاهیه سپس داستانی از زبان عربی گفت که نوشتم و به فارسی ترجمه کردیم میگه من به شیبه جوانی در پای آن ورقه نوشتم ترجمه از عربی به فارسی آسانه و چیزی نیست بهتر بود عکس آن را از من میخواستید این حرفو میزنه؟ چون زودتر از دیگرانم نوشته بودم ورقه رو میده دست ممتحن آقای ممتحن شمسل علما که آن را میخونه بدون اینکه کوچکترین کوچکتر این کلمه بگه کتاب رو میگیره یه داستانی به زبان فارسی از اون انتخاب میکنه میذاره جلوی کسایی میگه بفرما این اینو به عربی ترجمه کن میگه من آن را گرفتم و به عربی ترجمه کردم منتحن در شگفت شد و پس از پایان آزمایش پرسید شما کجایی هستید؟ گفتم تبریزی گفت در کجا بزرگ شده اید؟ گفتم در تبریز گفت پس این عربی رو در کجا یاد گرفتید؟ گفتم از کتاب گفت شما مرا مجبور می کنید نمره 20 را که به هیچ کس نداده بودم به شما بدهم کسوی در اون تاریخ در بین پنجاه نفر که داشتن امتحان می نفر اول شد و بعدها خواهیم دید که مجموعه کسانی که امتحان دادن امتحان برای قضاوت دیویست نفر در سطح مملکت بودن کسوی در زنجان بود که بهش خبر می که شما بین این نفر نفر اول شدید در این امتحان خب این آدم قابل احترام نیست این آدم آدم با سواد نیست پس از امتحان کسردی برمیگرده به دماغند خانواده رو و وسائل منزلشو از اونجا بر میداره می تهران و باز به مدت دو ماه در تهران بیکاره بیکاری برای کسردی برابر بیپولیه برابر وضع بد معیشته. و در این دو ماه باز میدونیم حالا که هر موقع هم که بیکار شده از یک طرف صدمه میزنه به کسوی برای که پول نداره ولی از طرف دیگه فرصتیش برای کسوی که بگرده دنبال مطالعات علمی می نمیسه در این تاریخ در مورد تاریخ مازندران مطالعات چه شروع کرد میگه کتاب های کتاب های نسخه خطی و سید ظهیر و تدوین و ترجمه ای ابن اسفند رو به دست آورده و به خواندان پرداختم ای ابن اسفند به اسمش محمد ابن اسفند معروف به ابن اسفند که مورخ تبرستان و این تاریخ رو در قرن 6 و نوشته که از روی میگه که در هر یکی از کتاب‌های ابن اسفند و کتاب سید ظهیر لغزش های فراوانی یادداشت ها کردم از چیزهایی که دانستن این بود که نسخه های ابن اسفندگار نادرست است شما حساب کنید قرن 6 هفتم، این آقای کتاب ها رو در تاریخ تبرستان نوشته از اون تاریخ تا زمانی کسری ادبای فراوانی بدون شک اینا رو مطالعه کردم هیچ کس متوجه مشکلات اغلات این نوشته نبوده البته من جرات نمی کنم عو کشور ما رو بکنم ولی خب کسری ولی تونسیت این مشکلات رو برطرف کنم کسری نمی که پژوهشگری من از این تاریخ شروع شد یعنی از این تاریخ به بعد که کسری همیشه اقدام به های اهلی رو در میشن میکنه. کسایی دو بعد از دو ماه اواخر آذر که دوباره کسری رو دعوت میکنم به عدلی و این بار ازش میخوام که به عنوان بازرس به عدلیه زنجان برود. گفتیم که هر کجا مشکلی است، کسایی دنبال حل اون مشکل میفرسته وزارت عدلیه در زنجان هم در ادلیه زنجان هم مشکلی بوده و خودش نمیتونست عملی بکنه یک نفرم هم فرستاده بودن قبل از کسری برگشتی بود جرعت نکرده بود حالا عدلیه کسایی رو میفرسته تا بره مشکل زنجان رو حل بکنن به گفتن که رئیس عدلیه زنجان که ما دعوت کرده بودیم برای امتحان نه ایمده. حالا یا بیسواد بوده یا گردن کلفته می حالا با هر دلیل قانون رو اداره رعایت نمی کرده. قانون دستور مافوق رو رعایت نمی کرده موده بودون جا هم میگه کسی اینه که این آدم از دموکرات های خان بوده قبلا و چون در زنجان مرکز دموکرات هاست و این دوستان فراوانی میدان فراوانی در رو را داشت قلدوری می و دستور وزارت عدلیه رو ندیده دیده گرفت و نشسته بود در رأسش یکی رو هم بودن، اون رو هم راه نداده بود تهدید کرده بود اونم هم برگشت بود به تهران کسری آزم می خواد آزم بشه به زنجان قبل از رفتن به زنجان رفتن با از نماینده های زنجان در مجلس شورای ملی بررسی کنم ببینم وضع زنجان چطوره و وضع این آقای چگونه هست می نویسی که گفتم اونجا می اونجا می بینه که نه مسئله خیلی بدتر از ایناست که وزارت عدلی به اون گفته این آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی حامی این رئیس عدلی هستم و یکی از عواملی که جلوگیری کردن از آمدن فیس عدلیه همه آقایانه نه تنها اون از این آقا جانبداری داری میکردن بلکه یکی از اینا شروع میکنه کستوی رو کردن که آقا شما نرید اونجا ما نمیخوایم اون عوض بشه کستوی میگه من شما چه حق دارید که این آقاید عوض بشه من میرم عوضش میکنم یکی برمیگرده میگه خب هرچی دیدی از چش خودت دیدی در اینجا تصمیه کار عمل زشتی انجام میده باید گفت وقتی ما میگیم کسری خوب بود که خوب بود اعمال زشتش هم باید گفت هر که مامش بیش برخش هم بیشتر قایی کسانی که آدم های بزرگی هستن اشتباهات شدن بعض وقتا بزرگ میشه کسردی در اینجا وقتی با دو تا صحبت این دوتا وکیل منلی صحبتی کرده مطفقه میشه که اینا اکس، اکسان ترکی دارن میتونیم خودی کسردیم اکسان ترکی داشت کسانی که درباره باره مطلب نوشتند، همه هر گفتن که به این درند گفتن که یک لحجه زیبای ترکی داشت ولی این آقا اینجا میگه برگشتم گفتم بهتر بودی که شما در این چند سال در تهران زبان شهری یاد میگرفتید این زبان است و از اونان جدا شده این عمل عمل درستی نبوده این لحظه گناه کسی نیست که نمیتونه عوض بکنه بگذاریم روز اول دیگه ماه 1301 که از به سوی زنجان حرکت میکنه درست یک سال در زنجان باقی میمونه و روز اول دی ماه 1302 از زنجان بر میگرده. به تهران که دنبال معمولیت های دیگری از اونجا رفته که بعدا صحبتشو خواهیم کرد تمستان بحث باریده خیلی زیاد وسایل نقلیت نمیتونم حرکت بکنن و کسیدی کسیدی که براش معمولیت دادن باید بره اینه که یک گاری پست رو میگیره یعنی تنها گاری های پوست بودن حرکت میکردن ایشون سوار یک ای گاری پوست میگیره با... میشه با چند نفر دیگه حرکت میکنه تا زنجامی چه روز در راه تو ها از تهران تا زنجان میگه صبح اول وقت رسیدیم یکی از دوستان که اونجا بود همسفران ما رو برد به خانش وزیر کرسی کمی حالمون جا اومد و از اونجا بلند میشه میره همام و از همام میره منزل مدعیل عموم داستان خودش رو معرفی میکنه یه رئیس عدلیه رو بگید بیاد اینجا رئیس عدلیه احزار بشه به منزل ایشون در اونجا بین کسوی و این آقای رئیس خاطی که دستور مافوق رو هم نکرانه میکنه در گیریه لفظی میشه بلاخره کسوی میگه دیدم خیلی تکه داره به مریدان دموقراتش و خیلی افتخار میکنم از این که من دموکرات کوچک خان بودم عضو دموکرات های کوچک خان بودم کسیدوی نحیب میزنه که تو عضو دموقرات کوچک عضو دموقرات شیخ محمد خیابانی بودم من از این عرفان نترسم وقت برمی میگه یا میری سر کار به, ایران به تهران که خواستم و یا اینکه به مریدانت میگم که این آقا بی این آقا رو خواستن امتحان بده و چون خودش رو آماده این امتحان نمیدونه نمیخواد داره به هر حال کسروی این آقا رو روانه میکنه به سوی تهران میگه پولم نداشت از کسروی کس از اگه یه پول میگیره و میذاره در این و بدین وسیله معایله تمام میشه به وصلی از این تاریخ به بعد کسوی میشه رئیس ادلیه زنجان حال ما در مورد زندگانی کسوی در زنجان سخنهای فراوانی داریم برای گفتن حکایات زیادی داریم برای گفتن مطالعات علمی زیادی داریم برای گفتن مطالعات جامعه شناسی مطالعات فرهنگ یکی از کارهایی که ابتدا قبل از اینکه وارد بحث مبارزات کسری در زنجام بشم یکی از کارهایی که کسری انجام داد در اونجا مبارزه با عدول عدلی بود عدول به جوان من به جمع عدل و عدالته کسری میگه که عدول از زمان دوران خلافای عباسی به یادگارونده بود وقتی ما میدیم که این محاکم شرعی 1400 سال محکمه میکنن و قدیمی اونچه که 1400 سال پیش قانونی بود امروز نمیشه اون قانون رو پیاده کرد ولی اینا میکنن دی خود نمیگیم میگه ادول از زبان خلفای عباسی باقی مونده بود و مسئولیت این ادول بر این بود که افرادی بودند معتبر مورد اعتماد مردم وقتی که دو نفر قرض می‌دادن و قرض می گرفتن، از این ادول دو تاشون رو دعوت می کردم. اینا شاهد می شدم که آقا فلانی به بهمان کس پول داد فردا اگر اون آقا از دادن قرضش خودداری می کرد این سا قرض دهنده این دو تا ادول رو دعوت می کرد به عنوان شاهد در دادگاه شرعی پیش آقای مشتهد و مشتهد بر اساس شهادت اینا قضاوت میکرد میگه حالا این عدود دیگه اون به صلاح شاهدان معتبر هزار سال پیش نبودن اینا گروه اوبارش گردن کنفتی بودن که اطراف مشتهد رو گرفته بودن در هر محکمه شرعی هر مشتهد در بیست تا از این عباش ها داشتن هم این گردن کنفتا امامو و عبا داشتن و گلد شما بودن هم کارهای دستورات مشتهد رو عملی می در جامعه و هم پولشون در هم از اونجا بود که می بین دو نفر که سر قرض دعوا دارن از توی که پول می و به اون به نفع او به شهادت می دادن. کسی در این باره در مورد تبلیزم ساخن گفته خواب بازم در بخشی قبلی گفتم که این داد سرا این داد گستری این عدلیه یکی از اهداف مشروطیتی بود که این رو اصلاح بکنه متاسفانه چون انقلاب به ملایان انجام گرفت به رحبری اونا انجام گرفت نزاشتم بشه البته ما از گروه از این ملایان بی نهایت سپاسگزاری ملت ما ست محمد تبا و همین خود بهبهانی در نجف خراسانی خونده خراسانی خلیدی تهرانی مازندرانی هم لای مازندرانی تمام اینا آدمای های درستی بودن در پیاده شدن مشروطیت ما زحمات زیادی کشیدن ولی منلایان حقشون خواستن حاضر نشدن عدلیه عدلیه اصلاح شده بشه محاکم عرفی حقوقی در اونجا پیاده بشه حقوقی که کشورهای پیشرفته از اون استفاده میکنم حاضر ما یه مطلب دیگه هم حضورتون ارزم میکنم در این باره این محاکم شرعی موجب شدن که در قرارداد ترکمنچ های 1828 که بسته شد کشور روسیه بعد بقیه کشورهای قربی حضورتون از که قضاوت کنسولی رو بر ما تحمیل بکنن قضاوت کنسولی عبارت از این بود که هر سفارت خانه ای افرادی که تابع کشورش بودن اجازه نمی داد به کشور ایران که در ایران در صورت که اون آدم خلاف یا جانجا می داد یا جنایت یا جانجا می داد اجازه نمی داد که در دادگاه های ایران محاکمه بشن باید می در سفارت خانه یا در کنسول ها طریق ها محاکمه می کردن. به سبت خود شد خیلی روشنه یک یکی نفر قربی حاضر نیست که طبعهش بده در اینجا اجازه بده اینا شلاق بزنم به سبک خود رو دست که رو نزدیک دیویست ساله از این قرارداد میگذره و ما هممون هم, هم, هم, هم تحقیر شدیم از این اصل به ضاوت همیشه هم از خودمون میپرسیدیم که چرا ما در کشورمون اجازه نداریم یکی که گناه کرده اون رو محاکمه بکنیم ولی به این فکر نکردیم که محاکمات ما محاکمات قدیمی به درد اینانی محاکمات انسانی نیست انسان کشه کننده است به هر حال حکومت میخواست که این مطلب رو این مسئله رو به نحوی از بین ببره یکی از این کارهان به ویژه پزار ززاشا میخواستن محاکم عرفی بسازند در بجای محاکم شرلی بنابراین در مدت اقامتش در زنجان از یک طرف با مولایان افتاد از یک طرف با اوباش زنجان افتاد ما لایان همون عدول رو با از بین بردن محاکم شرعی خواهیم دید خود به خود عدول از بین رفتن منحل شدن و در مورد کردن فرازان مملکت هم در زنجان هم مبارزه فراوانی کرد اصلا هم که یکی از کسایی که در زنجان بود و برای خودش فعودال بود برای خودش تفنگ رتمنطقهی رو تشکیل میداد شخصی بود به نام جانشاخ خان افشار این جانشاخ خان افشار کارش این بود که وقتی میخواست کاری رو و انجام برسونه رو میفرستاد میفرستا در هم اما میدونیم که رشبه های زیادی فرستاده بود از جمله در خاطرات احتشام و سلطنه. محمود میزا احتشام و سلطنه می خونیم که وقتیشون رئیس مجلس شورای ملی بوده دومین رئیس مجلس شورای ملی در مجلس دوری اول این همه آقای جانشاخان قدمت هرسیم که به او خودش در میفرسه فرسته جانشاخ مدت داد یک خروار روغند و دو هزار توم در اون زمانی که به احتشام سلطنه فرستاده بود میگه یک غالی به قیمت 3000 تومن و 3000 تومنم نقد به من فرستاده بود چرا برای که گویا ملک یکی رو در زنجاد خورده اون بابا اومده به مجلس شورای ملی شکایت کرده و این گاردن کلوhti میکنه فکر کنه با رشوه میتونه مسئله رو حل کنه یک این رشوهی رو به احتشام سلطنه فرستاده بود که اون قبول نمیکنه برمیگردونه و متاسفانه این رشوه رو به داماد سد عبدالله بهبهانی میفرسته و مشکلش رو از طریق بهبهانی حل میکنه ارحال کسرین روزی که من از آر رسیدم همین آقای جان شاخان 20 من روغن و شش خروار آرد به نام انسانیت و یگانگی به من فرستاد؟ اوالی کرد تصویی زنده برگشت دادن هدایای خان به او پیغام فرستاد که به امی سلام برسانید و بگویید که این انسانیت را درباره دارالمساکین دار که تازه در زنجان شده است بکند و این روغن و رو را به آنجا بفرستد فرصت من باز تمام شد بنده بقیه سخنانم را در مورد مقابله کسلی با مولایان که کار عظیمی بود، کار بزرگی بود، به بخش بعدی سخنانم میگذرم. روزتون بخیر به خیر موفق باشید.